كتب باشترين هاوري خواندناوي كتبو قران بنيو حكمتكاني نوسيندا كتبي چشدي مجاور نوسيني هجار مكرياني خواندناوي عميد علي کمار کردنی دلیر سلین گگرانی عزیز سلاوتن لیبه خوشحالین لبشی هفته و چواری خوند نوی کتبی چشتی مجیوری هجاری مکوریانی حتی نولاتن فرمون لگل حجر مکریانی بر دوام لسل به سر حتی خوی استا وک خوی د نوسه بنیازه شاخ و شور شوا بګریته وب بغداو اندس با کار و کسبی خویب کات او د نوسه اجازه م خواست بسمو بغدا نیاز مو ابو شو و شورشو مل کسب او کاری خون بنیمو چونکه ب ول بریکل و شان زور پس بومو بو همیدم ل دابو حتما بغدا ململ اکاسی نایو جروباره دا چومه هر راج بازارک شتم دا کریو دم فروشتو جیانی ایسایی من دو باو بجیم بسر گرتو بغداش بو من نخوش بو بو زور لحوالان پیشوم لدست دابو روش یک زبیه هم دیتو بو بویناو آشناو حتو چومه ننو دابو دو روش نم دیت و تین بخوردنی خراب جاراوی بو چوم لما لتنیایکی خوی کوت نامو ماضي خمانو 20 پروژه تا چک بو و لامبو هر وا ورده ورده نیوانی بارزانی حکومت ناخوش و ناخوش تر ده بو کبریا کم د ناسی بناوی خلیل دلالي نو بازار ګورو کرکوخي بو پیموت خلیل تر سولرز پیدا بو توا من به 80 بسموه شورش بل امرنګ لریش بم بخیال چې دادی خلیل دوای دو ایدو روش پیوتم مدیر پولیس که حولری ه کټوش ل زۆر باششت دەناسێ باسی تۆم بۆ باس کردووە کە فەقیری خۆی دەکااو کاری بەکاری کەس نەداوە ئاگات بالا هیچ و خۆڕایی گە چڵکی تێەهاێنن زۆری سەسلام لێدەکردی دەیوێت تاجی سەری منە کەس باسی ناکە بەڵام ئەوویش دەبێ ئەگەر معلوماتێکی بەفای دەی لا بێ بە منی بڵێ وتم خەلیل منەو کەسە نیم کە بیرتان بۆی چوە خیانات بکرد کاری منیا صد زار بمرم و من دالم لبرچاو لبرسان بمرن او تو فواد لمن لمندوره زور ظلم ګرم ده شعرې حلوکم هونداوه کله دیوانکم دا چاپ کراوه لناو ترسو لرزیژه کاسپی خوم هر دکردو چا نور قزوو قدر بم مانگ یکو در رجلزستانی سالی 1965 را برده بو شردست پیکره او. منکی که خیالم کرده بو تازه نچ موهره و آواره چی او بو مندالی خومده جیم وک نوبتی داریکی سخت گرمده هتم هوشو حواسم پینما. خوم لیا ناکود. شول سر جگه هر جنگلم ادا. ماسوم هستی پیکرده بو لچه وتی و لا موی اگر نچی و شورش خراب نخوشده کهوی. دی سان هر دو دلبوم. زور حیف اگر کوشتنو مال ویرانیش به د گل او هم خوشوستانم نه بم که او هم دردمان پکو دیوه معلومندال شمل به ولاتی غریباته دا زور جګی بزین اویش لبردستی لوجمندا ناشکری بیان بمن او شورش کدب نه بارشی ګوره بسر خو و شور شوه لناو او خوف و رجا داده دجم دا بلام جیانی سګ بریارم یارم ده هرچونک به د گل طرف دارنی برزنده دا یار و درمان بولشکر اشکر کو کماو به دور لچاوی دولت و پولیس بجیم. لابیستوسی منجی تو سیمنج مارسدا خدا کور کیده بر لو ببی نوم دوزيب اگر کور به ناوی دنیم پیرس یان پیران اگر کس به ناوی دنیم چامه بیا دی اور راجانی کلا بارزان بوم او شوی کمنداله کده ته سر دنیا ناوی خانی میشک ودلی اخنیم هر دبه ناوی خانی بی. خزانم دی ود چوزا نکسنا من دموت نخیر کورده بیو دبی خانی به ورک به دم خو هر دموت خانی کور بر بیان دنیا و ناوی بو به خانی به ناوی احمد خانی و نم توانې تیر کری تازه ببینم پولیسی سوري له دوري مالکم د سوره ته چه دکم و هاتو چوي چ کسان دکم امش دکاندار که کنه استوار عرب ابو یاسین نو کبر امر بو پیوتم نشانی کبر ایده مې ک دروانیت مالمن روش یک بیانی لامال درچوم، کابرای تاین ورده ورده با دومده هاتو لدو روا گمی ندا کردم. چوم ایزگی اکی اتوبوس او چو ایزگی اکی پیشتر لمن کلیک دیار بوین، من سواری اتوبوس بم تا ویش هات سوار بو. لفرصت اک خم حال داشتو گرژبانگی تاکسی اکم کردو مودای اون ندا دابزه. دور کوت موا، خم گیانده مالکه زبیحی، بیست پروژه شوانه لای او بو موروجانل لجنگی پاشنی وروده ده دهات مومال هټ مومل قدم زنی پلیسی سری بغداده حوصله نی به ګرمایه کولان راوسته بلای ګور لو دابو کلو اگر بسو سو اشته ده زور پیشمرګچو بونه لای دولت لسره ګان دن رابون هر کسین بنسبه قرتنیان ددان خومن جوګای قشان وابم پیشمرګنه بونم ناسه خبری چن کس کمزانی ک چوبون لبسرا و به عرض ایران ده هاتبون هر له ترسی او نا ساعد نه بر له و خوم له جورا کی ز به په شرمه و راژه کری کی سبلاغي کله مخابرات پولیس گشتیده بوتي دلند برزنی با توپ ل رواندوز ینده و بو زبهیم جراو وتی درویا تم مستاین به ایران نه لين ایران فیشک کیش نه برزنی و تم کاکه با فکر نکیناو اگر ایران یان غیر ایران یاری دی کورد بد ده له خوشیستی کوردونی بو مصلحت نصر وزر لار مندلن خوزستان عربستانو د استینن ایران ببه خوزستان ناجی یستا یاریده دکن کلشکری عراقین بو مشغول کاو عربستانین لبیر بريته ن اوانی حالات ن شویک گوتم زبیهی من هر د رومو کیوان لکوی ناسیا نمو گرتینم تو سلامت بلکو در بازش بم وتی ملارګه زور خطر ور دگل من بچین تاران وتم یانی دتای عجیب عدایمان کن و تو نه ملا سیاست زور جرّاوا من خم جارک چو مترانو میوانی شهنشابم یهستاش من خبر دنیا معاشن دیت سنوری خانقین لیراود خانقین کرگاکی آمینه لبی وادمان گین نتران منی شوتم کاک زور جار بقال تپی متوی من بلن براستی تو نترسی کی چون ترانی ایما آبرود دتای ترازنانه من نیویرم شدیو آبکم. هرچند پیام وابو نگم من نیویرم رجی کرکوکو پیش مرگ تو با کار بگرد نمیدن. دیسند چاوم لعفشان دو هرچی دبی بابیه. چه ما میدن کماشیان بگرم به هولی. که محمد مولود پیدابو. و وطی... تو ای اول لرز دکی. وتم دمیاب تموش ورش. هاتون ماشیان بگرم. و وطی... تو که کهیس خسیلی مکا. من لگل محمدا گاو حاجی محمدو تن کسی کتر سبید روین و هولی. خو هیچ و تم نخر نم دیون. اویش وویی ورد دلم او خال ما و دیار خوش کی داده کدایک ما دیار لقل او دو جاش از لانه که نه تو ان لریگ رامانگری منیش وتم. اوف چندش تی قرار من دا بیانی بچمه آتیل و رجل کم راجع عشربو طاوی دوکان و تنانت نان و خانش داخل آبون ساعت حاوی نیم بیانی چما آتیل کج محمد وویی اوی خال زور بخیر هاتی حجی محمد رنگی زرد بابو داینالاند و دستی بازیگی او بو گرسونی اوتیل هاد و توی آشورای هیت در منخانه لو آخراننیه. قط محاجی او خیره قطی کاکا لشو زغم زور کارده کاو دیشه حجم این ملیحال جیرا و با گرسونم وق قاو جوهری لی متنهای موتی باله. د مکه کوچکه چای کی چکو جوهری لیموم ل فنجانه قهوه یک دا تواندو د پیژ دا کوچ کې کم نه خوردو خیال بکا ک درمان دکم خور دیو دوي نیو سعادت وتی هاي براستی جانی سکم شکاو زگی شمیستا و تو ممنون بو او درمانه لبغداو برو هولیر حتین نیوارو گیشتی کرکوک، لأوتیل شرق العوسط دابزین کاک محمد و من چوین جوریک و تی باب در رستوران نانبخوین و تم کاکا من چند سال شاگرد اکاز بوم لکرکوک زور کزدم ناسن لوانه پیش مرگی پشیمانش توشن بن توب چو و تی باش نانت بوانیرم نانیان بوهنم لجورک خواردم لسرتخت یک راکشم کتا داروین بنون درگای جورکم کرایوا كبريك لهولاني حاجي محمد هاتجور وتي تي كاك هجار دبي عفو بكي من توم نناسيبو من شويتم جاي استا دمناسي من توم قد نديو هجاري نيم ليتك شوى وتي تي اي بيا قزابي او رجد لبير نما وكشر لسر ابو تو خوات لحيدر ببو حسين غيمير قسوريتو الركرد و تد ناموستانده دا خطر دا یه هیس نه به جنو خوش کی خو تان به پاریزن تا جاش نه بیردون من چون تو دگوره من پر سیم با شاه جنابت بولوی ابوی از غلام من له شر با اسیر گیراب مولا بارزان د بسربم او روجل ل نزیق تو بارزانی و چوبو مبن برد دکرد حاجی محمدیش هر توی نه ناسیبو پر سیم دیجا استا می وتی بله بله ناسیوتی من پیام گد منش بودم دباشه، باشه باشه من دمه بخوم او رویشت خواه اجل لکوم ده بینه توا چون بپی خوام کوتوم داوی مرگو اوانا که به شعر النصر هزار جوانم باب و باپیری دوا در دا جزانن هونشین بارزانی بوم استاد چه بکم چون مسر تختکم لپنجره بلنده و روانیم بالکو بتوانم خون فرادم و حالیم نه خیر نه دگم پنجره نه اتوانم بازدم پتر لشیست نه. باشروه به بیا نو د 6 نوامبر مله پلکانو هرچونیک به تا حاجی محمد نامږي وته ل درګای اوټیل درچمو بناو کولانند راکم بلکره رزګارم به لو فکرانه د ابوم حاجی محمد هاته جوړ وتی کاک عبد الرحمن حز دکی بروین پیکو قدم یک لیدین و تمبل بوچی ما ظلم ده هات لکارکو گذره شارزم زدم. لپیچی کلانک حال دیمو خمون دکم. در کوتین چوار سوفی چقدر با دوامان او راست بستر پرده تازه خاص دا رویشتن کرده حالات نبود. لاریا زور باسی شعری کردی کرد و بخشی خوش راب ورد. هیچ باسی تری نکرد. لوسری پرده و گرایناو اوتیل برد می جورکی خوی. با سوفی کی گد دو هنه سر بالکون که دروانی خیابان. بانگی عمری کرد و سرتی که کرد. عمر پنجره پیوه در جای درگاه جورکه ویسته حاجی محمد لپر سریحال نو پرسی بیان بله تو هجاری؟ و تم وتی و تی دو دزانی چند دیمه شند و چند جنیو بخوم و بابندو و خلق چون که شعر لبرین کردو اخر آخر بو چی ودگل کردوین؟ منیش حاجی، تو دلی مسلمانم اگر بلن واد جنه که دین دیو مکه و مدینه و ارانکه و هاوارد بو داشیم هوا رو بدال دفاعیم یاد اگر کسی کردی که بگریم نهیلی لپاراستی قبلا کد عبجدار بیوسترکی، آیا شکایت دلی؟ یعنی بر لعنت جنی بی من مل اشرتی برزنیم. هزارانی وکمنش منش چند تو که بدلا لپیروزا، کردستان من پتریش للا باقدرو پیروزه، آزادی پارستین. برزنیم من باید خوش دب کیری دم داده قبلا که بفرزیم. توشو کسانی تری وقتو دا تانوی ازادیه که من سر نگری و براو پاش من راده لیترون بی اگر با بدل جگه برزانی با و با ازادی حولیده با برزانی شر دگل ازادی خوازان کرده با او جنوانه با برزانی ادراو تاریفی با بتمنده کرد من لیره دا حق دادم بخوم توش کیفی خوتا چونت پی باش واب که اویشوتی ایستا کبر چنگ من کوتوی پیدوای چود دگل دکین و بلالم توق پیوی کی کوردی اخرتی به بزویو پیوانو پسندم ممدند از دولت بو خو تن لو دشت بم کوجن گردن تا نازاد به بو کوچکه خوینک نه پاره مو نه حقشت نگرم پیو بو ممددس عربن دشمدی بلمچی او شوتی او دیاری دا که محمد مولود د سی ام ای بریوو تو خالی اونیت بلالم پمبل بو شوی د شوی وتن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 دوری ساعت شوار کوتین راه، بلام امجر کج محمدو من لماشین حاجی محمداسوار بین. ندل کی محمود نعیق محمود و تی عبدالرحمن دبی میوانی من بی حاجی محمد و تی بعضو بچه چایو باخشی بکوه کج محمدی جوای پی خوشه دقل کج محمد هاتینو مالیو لرک کارسته کن با جراؤ وتم کجا دلیچی حالیم و تی تازه نجاتت بوه حالی خرابه حاجی محمد بپیا کی پیاود ناسم. فرویدانو درونیه. سیبر شوربوبون، تقو قوما قرمدان دا سربان، نداشتی خوارهاولیر و شرق بو کشتهای ندی وا. تیره با بمباو تیربار، تابوتان کو از کر، تقو قرمو قرمایا، دوکال داشتی دگرت وا. تیره یک پیک راول نزیک مالان کوتو، قریلی بزرگ بو وا. همو خالکیهاولیر جنوبیاول سربان آنوا سیریان دکردو، دنجی آفرین پیشمرجال همولا کابلان بو. مندلهاولیری هر ما پرسدش قیراوا هرای کن بو. خر حز دکیرت ګوت لیبه هتا سیر حلګرا شرهر بر دوامو شو ماشینګ لدرکی محمد بو بر له هر شد بس یو شر جرا او وتی کور سیر لودا بو سوفیاکانیه مسجد جمعنی پیش مرګو حوال دولتن لسربانه بو بو ازیتی پیش مرګکان اما چیروکی امشرت چبو ابراهيم افندي ک سردسته پیشمرگان نوښاری حولربو لکیو بکن جنو مندالی آواری پیشمرګداتیا پره جنان زوری جنو پییدن که پیخوری کیو امنیو هر خود قلودکی برایم افندی دزانی شوی عاشورا لبر خاطر که ک زور بیان شین ګوښ زور سر سرد بردرې بو عاشورا شو دوری قصابخانی پادګند ده, ده دوازده پولیسی لیا چکنډه او حبس یاند کله جوړ یکدو کلاکی شست مر بیست منگو گا توازده گامیش لکمیونی قصابخانه بردکو دا چی داله او پیخورو دا بشیدکا. سبه اشپسخانه پادگان چاو نوری گوشتهو نیه که دا چن جیتر رو گامیش نماوه. پولیس حبسنو قصاب به ساتو رو کردو دگل کمیونه گوشتن براون که کلاکن شقو پاکن. لشکر لبرایم افندی دنگ دادن. داسنه سربنسلاوه کبن کیپیش مرګاتیو او شریې واره قومه او کپیتل ل ۶۰ سربازي دولت کو جراوه دو تانک شکاو تایریک به تیرباری گرینوف پکراو سوتاو لشکری دولت به سرشورې ګراوه تا حاجی محمد وتی به دربین دمروانی تانک یو ته سرپیش پیش مرګن لبري حالات لزور کانیک خوهایشت کندال کوده مزراو به برنو تقیل تانک کرد تانک لبر کابره حالات ولپشتوا پیش مرگر راو دوینا اگر بو گلانی بی کسی اوکو کردیش و گلانی خدا پیداو تاریخ بنوسرا با نایو برایم افندی لرزی آزاو کرزننده به آویزی رو بدرشترین خد دنوسرا بلام آخ و صد آخ که او جور پیوانا نویان لبیرده چهتاو کس آوریان و سر هجاری مکریانی لیره دا چندین نمونه لسر ازایتی و پیوچاکی برایم افندی دا جاره توا بلان بایست کت موده ما نده که بوتم جاره نوا سبینی لبش کتری خوی نوکتی بی چشتی مجورده دینوالاتانو او باسشتان با تاو دکین تاوکت شوتن آرام شادومانو بختور بن